قبل از اجرای برنامه گلها، از زوات محترمی که برنامه گلها را ستوده و ما را تشویق و تحسین نمودند سپاس گذاریم و در ادامه این خدمت فرهنگی از خداوند توفیق می طلبیم. این هم برنامه مطلوب گلهای جاویدان برنامه شماره 124 در این برنامه نویسنده توانا سناتور علی دشتی، سخنانی درباره شخصیت مولانا جلال الدین محمد مولوی ایراد می نمایند. سپس، غزلی از دیوان شمس تبریزی، وانگاه بیتی چند از مصنوی معنوی به سم خواهد رسید. al ha پرایدت به گل طبقی از گلستان نن ببر ورقی گل همین پنج روز و شش باشد این گلستان همیشه خوش باشد در عرصه گویندگان بزرگی که تاریخ پر افتخار ادبی ایران را آفریدن و را از پرمایه ترین ادبیات جهان ساختن جلالی دین محمد شأن خاصی دارد از مجموع روایاتی که در اطراف وی پدید آمده است سیمای منی و تابناکی بر ما تجلی می کند که از صف بشرهای آلوده دور و بحریم انبیاء مرسل نزدیک می شود کتاب از این مشکن مسنوی از حیث انبوه مطالب و تراکم مفاهم دقیق ارفانی در سراسر جهان بی همتا به دیوان قزلیات او که به دیوان شمس تبریزی معروف شده است از شور و تلاتم احساس در ادبیات تونگر ما بیمانند است از خلال این دو کتاب ارجمن روح پرگنجایشی در برابر ما گسترده می شود که ساگی شک و بدبینی لکه کینه و خودخواهی نقطه های تاریک تعصب به جمود در اون نیست به مقتضیات زندگی حقیر انسانی او را زبون نکرده است در آینه روح بزرگ او با همه شفافی صورت شر و بدینه می افتن برعکس هرچه زیبایی و خوبی سر منعکس می شود زشتی و پریدی را در دایره زندگان او راه نیست از وجود او پیوست عشق و خوبی میتابد و هرچه در شاعه اون واقع است، گر روشن میکرد. گیرا عشق او از تمام کیفیت های علایق زمینی و بشری منزه است او به زیبایی مطلق و خیر محض عشق میبرزد. در جانوی جهش برگش ناپذیری به سوی نور و حیات جاویدون مشاهده میشود. و در فضای بی انتهای خوبی و زیبایی به پرواز آمده است به همین دلیل از محیبترین و چار ناپذیرترین حوادس زندگی در جان او نگرانی و حراسی نیست تنگامی که بشر عاقل و متفکر از مرگ اندیشناک و در رنجه است او مرگ را گشایش در زندان فرض می آزمودم مرگ من در زندگی است چون را زندگی پاویندگی است بر سر گور بدن بین روح ها رقصون شده تا ببینی ست هزارون فیشتن بیفیشتن. فیشتن همه دلها نگرون سوگ ادم این ادم نیست که باغ ارم است این همه لشکر اندیشگ دل دست پاها اون ادم یک علم است زتو تا غیب است چون روی از ره دل یک قدم است. دراردی محمد شاید بیش از هر گوگندهی دیگری شعر گفته باشد. اشعار وی از غزل و ربایی و مسنوی از هفتات هزار بی تجاوز می کند و بیش و په یکی از پرحاصل ترین قریه های دنیا به شمار می روید. احاطه وی بر معارف اصر خود و سلط بر دو زبان فارسی و عربی، قابل تردید نیست ولی اون چویی را از سایر شعران متماکز می کنر نکسته اشعار است و نو فور معلومات بلکه وجه تشخصه او در گنجایش روح مواج و در پهناوری مشاعر غیر ارادی اوست گاهی در باغ زیبایی گردش می کنی باغ باصفا و دلنگیزی که دست ماهر با بانون خوشزوق اون را آراسته است انواع درختان سایه گستر را درون به بار آورده منهای منقش به خیابونهای مشبک از سایه و نور احداث کرده است تبه های گل سایه ونهای سبز و معتر ترتیب داده آبنماهای شفاف و, و درخشون را به ترنم درآورده است در این باغ با تفنون راه می روید نقشنگار و اون چشم شما را نوازش به جانتون را منبسط می کند ولی هی سکونه حراس قموز و اپامی دل شما را به تپش نمی اندازه اما گاهی سرکار با جنگل که انسال انبوهی با جنگل بیگ و ناپیدا حدودی می افتاد چه قوه اون تحت سلطه به تفنن موجود بشری نیست طبیعت توانگر و مصرف طبیعت قادر و حدود نشناس طبیعت سرکش و نعزم ناپذیر اون را در تگی احصار به بار آورده است است. سرشار هست، نامحدود است, نام است. لبریز از حیات و حرکت است درخت های اول پیکر خارج از هر قاعده و نظمی به طرف آسمان بیرون جستند بوتها و علفها و پیچک جایی را توهی به فارق نگذاشتند خط راهی و نشان راه دیده نمی شود جنگلی پر از حیات، حیات حوثناک و سرکش، لبریز از سکوت پر همهمه همهمه پرندگان و حشرات و جانداران مچور، جنگلی پر از قموز و ساگه پر از روشنائی هایی که تاریکی را بهتر نشون میدهند تفاوت روح جلال الدین با سایر شاعران از این قیاسه است دیوان قزلیات سعدی و دیوان شمس تبریزی را از روی این معیار میتونستن که در افق پهناور وجود جلال الدین عبرها به اشکال گوناگون ظاهر می شود هر لحظه این اشکال به اشکال دیگر برمی گردند. نور خوشید با این ابرها بازی تمام نشدنی و مستمری دارد هر دمبرنگ تازه می آفریند کشم از این همه تنوع شکل و گناگونی الوان بدی خسته نمی شود اون چه او متداول و معمولی نیست در دو کتاب مصنوی و دیوان شمس تبریزی روح او گسترده است اونچه در این دو دریای مواج بیبینین این اکاس فضای پر عبر، پر باد، پر ستاره و پر رعد و برق جان اوست بسیاری از غزلهای دیوان شمس تبریزی که از شور و هیجان لبریزه است یا سحن سازیه های قامزی که ما را به گیرت می اندازد ناشی از این کیفیت است گویی یک نوع مکاشفه یا اشراقی باعث سرودن اونها شده است. ارفان و تصوف در زبان مولانا صورت فرضیه های خشک فلسفی را از دست داده در سیمای جذاب عشق ظاهر می شود. وقتی می خواهد از این لطیفه ارفانی دمزند که جهان هستی معلول ذات واجب الوجود است، به استدلال و تنظیم سقراب و کپا نمی پردازد اندیشه به صورت یک بذل عاشقانه و مترنم بیرون میآید. گل خندون که نخندت چه کند از مشک نبندد چه کند نار خندون که دهان بکشاده است چون که در پوس نگنجد چه کند مهتابون بجوز از خوبی و ناز چه نماید چه پسندت چه کند آفتا بر ندهت تا به شنور پس بدین نادره گمبت چه کند تنه مرده که برو برگذاری نشود زنده نجمبت چه کند دلم از لست غمت گشت و چک نترنگت چه کند در هیچ کتاب توحید و علم کلامی این اتمینام و این فروغ متوالی که از زبان جلال الدین می و اندیشه جان پر از قلق را در حاله از نور می پیچد نمی آوید او به قریه فشار نمی که در ستایش ذات باری تعالی قصیدی به زبان او زبان عدی جمله پردازی نیست که صفات عظمت را برای خداوند ردیف کرد اساسا زبان او زبان حمد و سنا نیست زبان تزلل بنده به مالکیت خود نیست زبان عشق است زبان وجو اشتیاق است زبان مصنوع و مخلوق به آفریدگار هم نیست زبان سایه و شبح است او مانند به علمای کلام به استدلال دست نمیزند زیرا میداند از عقل در دایره طبیعیات کاری ساخته است ولی اون را به موفوق الطبيع دسترسی نیست دراویری عقلی همه خدش پذیر به فرضیه ها همه قابل رخنه هند. شخص گمشده در بیابان تاریکی بینشانی در شب دیجور چگونه میتواند با استدلال عقلی جهت سگیر خود را پیدا کند. باید برقی به و تاریکی را بشکافت تا نشان به راهی پیدا شود. گویی در جان جلالدین محمد این برق تابیده به تاریکی های متراکب را شکافته است بر کوه تور لمعانی دیده و به دنبال اون رفته است. من چون موسا در زمان آتش شوق و لقاب سوی کوه تو رفتم. هبه دالی، هبه دال. چون بر روم از هستی، بگیرون شبم از هستی در گوش من اون جا نیز هیهای تو می آوید. زیر فلک اطلس، حشیار نماند کس زیرا کز پیش و پس میهای تو می آوید. گاهی سیر در مسنوی و دیوان شمس به مسابه نماز است ولی نه این نمازهای ظاهری و آری از هر حقیقت کفید بلکه نمازی که شخص از علایق حقیر منتظه شده و به روح شامل کائنات روی می آورد نمازی که نفس از شرور و مفاسد عالم ماده کناره گرفته به سوی صفا و پاکی می روید و انسان از خود حقیر و مسکین خود بیرون آمده از زشتی ها و پلیدی های عالم حیوانی رها می شود و همان است که خداوند در قرآن فرموده انسلات تنها عن الفحشا این تاثیر ناشی از این است که گفته های وی برگشت صدای رو اوست به حس خود را می و غالبا در حال بیخودی و جذبه از وی سر می چون چون چنگمو از زمزمه خود خبرم نیست اصرار همی گویم و اصرار ندانم در بینش دیدار چنون مستم و حیرون که از نور فراغم بود و نار ندانم او با خود زمزمه هایی دارد این زمزمه ها روح آسی و خسته ما را در گهواری انداخته تکن میدهد و برون نوید میباشد در شب پر پرستاره خاموشی نیان دشت بی کران و آرامی صدای نی می پیچن. سایه اشباه و خیالات فرود می آین. در تاریکی خواب سنگین و لذت بخشی فرو می روید. روح جاوید کائنات نزدیک می شوید حقارت ها و مسکنت های زندگی را فراموش می کنید بیم و نگرانی ها ما را را ها می کنند زیرا جلالدین محمد بر ما نوید می روید همرا بیاز مودم تو خوش ترم نیامد چفرو شدم به در چطور گو هرم نیامد سر خوم با شودم از هزار خوم چشیدم چشرو به سر تو به رو سرم نیامد همچ گل سرخ برو دست دست همچ می خال قزه تو مست مست ای که تو تر از, از من به من دم نزنم پیش تو جز پست پست غیرت تو گفت برو راف نیست رحمت تو گفت بیا هست هست او متدین و لبریز از ایمان است ولی دیانت در روح او یک نوع جذبه است به سود وجود مطلق و سیر سعودیس بسود کبال و تحزید دیانت در زبان وی جنبه تعلیم قواعد و سنن را از دست می دهد از تنگ نایم مراسم و ارکانی که مذاهب گون برقرار کرده بیرون می آوید مدت مبدل به سحنای پهناوری می شود که تمام ملل و نحل را در درون خود می پذیرد عرصه جولان ادالت و آزادی و عشق و خوبی می شود در چار تنگی که دو کنداران مذاهب برای فکر و عقیده خود ساخته هم محصول هر گونه تعصب و تحجر در عقیده را مخالف آزادی و برش روح انسانی می داند. دیده بکشا زین سپس با دیده مردم مرو کن فلانت گبر گویت اون فلانت مردیم. علاوه بر کثاشت اشعار و روقانی سیلاب سایه تطب و علاوه بر فراوانی تعبیرات خاص و تمثیل های تازه و شخصی که او را اسرامد گوگندگان قرار می‌دهد اساس روحانیت عظیم و شومی که در مولانا نفته است جلال الدین محمد در میان گوگندگان بزرگ ایران بلکه جهان نظیر و مانند ندارد عشقی چیست بگو بی دل و درمان بودن همچوشم از شرار شیدان روز بی خدا بی Oh <laughs> Bye. tis fanodor estan ba game که هم درد بود داروی اون با چنین درد نشاید هی درمان بود Oh oh oh xasie ami on kasiro que احبوب مران بود پس از این قزل که از دیوان شمس تبریزی مولانا به سر رسید صاحب دلان بیتی چند از مصنوی معنوی خواهند شنید Bye-bye. شنزنی می از, از جودا Shikou ye आज नए स्तव तुम्हारा वो भृदय आज नफीर کسی کو دور ما هر کسی <تصفيق> slechim bazduyet شرح الاسفرا تا بگویم شرح درد اشتیا Le cachmo go tes spun bon ke yo mis bo oh herke Nado un reis bolo Hercan o tes nado reis تشه عشق کمند می فتاو نجوششه عشق کمند گلی بود جابیدان از گلزار بی همتای ادب ایران گلی که هرگز نمیدد شب خوش